اللّه وَاللّهُ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الله ابن الحسن صلواتك عليه و على آباء في هر ساعه في كل ساعه عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزكته وآواته وتفيها تبيلا مناوال شدن جلسمون و قلوب هزار و انوار هدایت حضرت بقیت الله لعزمت جن الله تعالی فرجه و شریف و تاجیل در فرج حضرتشون به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علی محمد و آل محمد علی بن ابی طالب و بیبی بی دو آلم خانون فاطمه و سلام الله علیه به نیابت از بیبی ام بی البنین سلام الله علیه سلوات قدر فرمایید رفع هم مغم از همه دوستان امیر ورده شدن حاجات حق تو این عالم آقامون امیر المومنی و دوست داره انشاءالله حاجاتش، ابتلاعاتش و امتحاناتی که در این سال جدید براش پیش بدن انشالله با آفیت برطرف بشه محضر عربابمون حضرت غمر بنی خوشم صلابات خلف اللهم امشالالله و کردیم یه شب دیگه مننت سرمون گذاشته به اجازه دادن دور هم جمع گرد فضایل من آقا و آقا امیر المامونین علی ابن عبی طالب و اولاد تایبین و تاهرینشون که مکرر عرض کردیم آقا رسول الله صلوات الله و سلام علی فرمودن سید اعمال و افزل اعمال محبت آقا امیر المامونین علی ابن عبی طالب و اولادشون در این چهار شبی که محضر عزیزان خودم درس پس می دارن. همشبم که مثل محضر استاد عزیزم حساب الامر ایشون درس پس میدم الله که مرزی رضای حضرت هم قرار بگیره جنبندی این چند شب رو انجام بدیم بعدم نزدیک ایام شهادت رهلت رحلت رحلت رحلت بیبی از دومرونین سلام الله علیه ها به شب آخر فاطمی یرم که مرسومه و به وجود نازعین قمر پنی هاشم تموم میکنن که حالا انشاءالله موفق باشیم به اهل مرزات حضرت وقیت الله ارز کردیم در این شب گذشته که <تصفح> ما باید متوجه بشیم هدف خلقتمون هدفی که حضرت رببال ارباو از خلقتمون دارن چیه؟ تا متوجه نشیم هر چقدر هم عمل خوب به زعم خودمون انجام بدیم میشه عملهایی که به فکر خودمون میاد شما تو قرآن که مطالعه میفرمایید میبینید که بدپرسته نمیگن ما بخواییم با خدا دشمنی کنیم بدپرسته کنیم میگن ما اینو واسطه خودمون و خدا قرار بدیم یعنی به زعم خودشون یه کار خوبی انجام میدن امتهای پیغمبران گذشته اونجایی دچار انحراف می شدن که به فکر خودشون به زعم خودشون میخواستند خواستن دینداری کنند. امت رسول الله هم که ما باشیم از این خطر دور نیستیم. روایت صحیح از آقا رسول الله که فرمودن امت من هفتاد و سه فرقه میشه. از این هفتاد و سه فرقه نه فرقشون مهبان امیر المومنین هست. اما یه فرقشون رستگاره. اون یه فرقه اون نه فرقهی که اون موقعی که محبت امیرالمومنین ندارن همون جور که استاد از زن فرمودن منهای اهل بیت هیچ عملی فایده ندارن اون فرقهی که محبت اهل بیت رو دارن آه رسول الله فهمدن قرآن و روایات رو تفسیره به رعی میکنن یعنی به نظر خودشون اول میکنن نسبت به قرآن و روایت. اونها هم راه میشن یه فرقه است که صح قرآن و روایت رو به عنوان فصل خطاب میگیره یعنی چی یعنی میگرده ببینه حکمت رب الارباب چه هدفی داشته برای خلقتش ما گفتیم گفتیم اعمال ذیل رضایت حضرت حق مقبوله یعنی اگه شما نمازت و قربتن الله نخونی مقبول نیست بهترین و قشنگترین نماز باید نیت تقرب الاله باشه نماز، روزه، خم زکات، همه فروع دین و همه احکام شریع به قربتن الله باشه اینا نشوندهنده شرع شروع تیست در حالا ما واسه چی اومدیم تو این دنیا ارز کردیم آیه قرآن میفرماید ما خلق تا جنب الانز الا لیا عرض کردیم ارباب اون امام حسین در تفسیر این روایت فرمودند لیه ابودون یعنی لیه عرفون لیه عرفون معرفت خدا حاصل نمیشه الا معرفت اهل بیت معرفت اهل بیت هم با طبیعیت و اطاعتشون حاصل نمیشه چون معرفت اکتسابی نیست که برید بخونید معرفت پیدا کنید باید بهتون بدن معرفتشون رو و به کسی نمیدن که اطاعتشون رو به جا نیاره. طاعت اهل به چجوریه باید هر کسی ببینه در زمان خلیفت اللهش مرزی رضای خلیفت اللهش زندگی کنه مرزی رضای امام زمانش زندگی بکنه مرزی رضای امام زمان زندگی کردن که باید متوجه بشه امامش خلیفش ولی نعمتش متش حجتش چی ازش میخواد اینها رو گفتیم گودیم یکی از اون چیزایی که حضرت خیلی براشون مهمه و قایت خلقت در زمان ماست بحث زهور حضرت صاحب. صاحبه و تا ظهور محقق نمیشه تا شیعه آماده نشه ارز کردیم ولی دشمن کارش دشمنی از اول دشمنی میکره الان دشمنیشو میکنه درست خدام هم که همون خداست امام زمان و همون امام زمان. اما شیعه باید خودش رو آماده زهور میکنه پس اگر دنبال رضای خدا هستیم رضای اهل بیت هستیم دنبال رضای حضرت زهر سلام الله علیه هستیم باید شرایط رو ظهور فراهم کنیم. بکنیم اگه کسی دقدقه این مطلب رو نداشته باشه نمیتونست به خودش رو موحد بذاره مسلمان بذاره که میگه این حرف رو؟ این رسول الله سلام صلوات علیه الله صلوات الله میگن میفرمایند اگر کسی امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده امام زمان این نیست که اسمش چیه تاریخ تولدش که یه پدر مادرشون کیه امام شناسی یعنی عمل به وظیفه در زمان در قبل امامش خب گفتیم یکی از مهمترین چیزایی که امام زمان در نامهایی که به شیخ مفید نوشتن فرمودن که معروف به توقیه این نامها فرمودن شیخ مفید اگر می‌بینی زهور ما عقب میفته شما از دیدن ما فیض دیدن ما محرومید اینه که دلهاتون از هم دوره دلاتون از هم فاصله داره گفتیم همه هم قمه یه وچه هیتی مسلمون یه دوست امیر که اولا خودش نسبت به همه مهربان باشه پدر، مادر، اقوام، دوستان و همه یه محبین امیر المومنین. اونم به نیت امیر المومنین نیت مهمه این قربتن مهمه یعنی وقتی داره دست پدرشو میبوسه دست مادرشو میبوسه بگه آقا المؤمنین دوست دارد خدا در قرآن فرموده دوست داره نه اینکه خودش بز پدر مادرش لوس بکنه که پول تو جیب بیشتر بشه مایه بیشتر بشه این نه جهت رضای امام زمان اگه به برادرش به خواهرش محبت میکنه جهت رضای خدا و اهل بیت باشه بعد گفتیم همه هم مقمه ابلیس هم اینه که این اتفاق نیفته بین دوستان امیر اختلاف بیفته با رفیق دعوت بشه نه با رفیقت با کسی کسی نمیشنستیش تو خیابون داره میری حالا پیشت جلوت یه بوغی هم اضافه تر خدایی نکرده زده رب برو رب رو جلو چشش چرا بوغ زدی آقا من به ما ما توی محل اسمونه تریلی نمیم تو واسه ما بوق میزنی حواست نیست که بابا همه این کارا رو شیطون داره میکنه که تو به یه محب به امیر فرش بدی دل رو بشکنی وقت دل طرف که بشکنه رقایتشو <تصفح> خوندیم فرمودن اگه دل دوستی از دوست ما بشکن دل من محدی صاحب از زمان میشکنه میتون جوابشو بدی؟ همه ی حرف سر اینجاست که همدیگر رو دوست داشته باشیم به همدیه به عشق زمان محبت کنیم دق دقمون برداشتن اختلاف بین دوستان امیر باش کاری به ایران یا عربو عجمم نداره هر هرکی تو عالم امیر رو دوست داره چرا همه ی هم به شیطون اینه ما میریم عراق زیارت کربلا ایرانا برمیگردند می مین ش عربا ر ب ذی ا عرب سسماخر س آغا بدمون میاد از این عربا این همینها بودن ما حسن کشتن چه از این حرفها خب ما چه شرافتی داریم آغا ما ایرانی هستیم ما 2500 سال قدمت تاریخ داریم ما نمیدونم کورش داشتیم نمیدونم خامهنشین داشتیم داریوش داشتیم چه میدونم اینا اینا خطره افغانیه تو خیابون را میره خب من کشور ما داره میخوره یه روزیشو تو امیدی یه روزی تو را داره میخوره تو افغانی که دوست نه. المومنی من رو تو شرفتی داریم ما همه اگر برای تو تاعتی نوشته شود محبت به اوست به عشق امیر المومنی. ما هیچ شرافتی نداریم الا محبت امیر المومنی حال پنجه هزار سال سابقه تمدن داشته باش. نه حرف من نیست حرف امام سجاد به ابو حمزه سومالیس که فهمدن ابو حمزه هیچ کسی درگاه خدا و مقرب نمی شود الا با محبت امیر المومنین و بجوش. و هیچ کس اقاب نمی شود الا با واسطه بیتوجهی و ظلم و احل ویت بقید همین معیار هر کمیرن امیرالمومنین بیشتر دوست داره آیه قرآن میگه آیه قرآن میگه چی؟ قیمت آدمو چیه؟ به تقوه های دیگه که هیچ شرافت، هیچ خاص نداره الا تقوا. تقواش، تقواش بیشتر باشه. در حدیث از امام حسن عسکری هست در تفسیره که در واسه قرآن تفسیر قرآن دارن ایشون فرمودن تقوا یعنی محبت به امیرالمومنین شما وقتی امیر المومن دوست داری شرم میکنه گناه کنی اگر هر چقدر صادق تر باشی شرمت میاد گناه کنی هر چقدر با محبت تر باشی راست بگی به مظاهر ولایت امیر مثل نماز و روزه و زکات و اینها مقیدتری چه تقوی پس چه چی شد؟ آدم ها شرافتشون به محبت امیرالمؤمنین بودنه پاکستانی میخواد باشه افغانی باشه عرب باشه نیجریه‌ای آفریقایی باشه هر کی میخواد باشه این انحرافی که اخیراً هم مرسوم شده هی میگن ما ایرانی هستیم ایران فلان ایران بسار تو میکیال المکارم کتابی است که مورد تایید حجت ابن الحسن تو این کتاب نوشته امام زمان 9 تا جنگ تو ایران دارن حالا خودیا خودشون یا هوا سید ایران شیه. هفته از این جنگا چیه به اسم ملی گرایی آقا ما ایرانی هستیم ما زیر یوغ عربا نمیریم اینا انحراف شیطونه پس اگه نگاهمون به عالم نگاهش یه محور باشه تو عالم هر کجای عالم هر کی امین و دوست داره رو سر ماجرا داره این نکته رو بارها گفتم اینا سر لوحه زندگیتون قرار بدید هیچ وقت نتونید به کسی فخر بفروشید بگید من آقا من 20 سال روزه میرم روزه میام فلانم مسجدیم نماز اول وقت خونم همه اینا سر خودش اون دوست امیرالمومنین که الان دو ی گناهیه دو چهار ی این بنده خدا او ابن جعفر از عملش تبری به جور بگویین بعد حجابه عملش بده خودش قیمتی دوست امیرال حالا این شاید اینی که اون دو چاره انهراف و گناه شده بارها گفتم دفعه سوم اینجا میگم من آخوندی که اینجا نشستم من فرقم با اونی که الان تو زندان اوینه هیچ فخری ندارم من لطف امام زمان شامل حالمه امام زمان امتحان سخ از من نگرفته از اون امتحان کرد. تو امتحانش پند خدا رُفوزه شده آبروش رفته دلیل برای نمیشه که من که امتحان ندادم از اون شرافتم بیشتر باشه اون امتحان داده رُفوزه شده یکی تو دانشگاه درس میخونه مثلا حتی هش میگیره با من که دانشجوی دانشگاه نیستم میگم آقا اصلا ما که هش نگرفتی واسه دانشجو نیستی تو او امتحان داده ولی خود شده نگاهم اون میمونه که قیمت آدم ها به این نیست که جایگاهشون گزاز قیمت آدم و محبت ما نمیدونیم که پیش خدا آبرو داره دیشب گفتن یه دفعه دست یکیو مثل علی گنداوی گیرن مثل رسول ترک میگیرن میشوننشون بقل بزرگان دین یه یه بزرگیم مثل بلهم ابن باورا با که تو قرآن اومده مستجاب و دعوست یه شب اسفل میشه زبیر پاکار امیرالمؤمنین المومنین سیف الاسلام میخور زمین ابن عباس به اون وضعیت میافته که صحابه خاص پیغمبر مفسر قرآن به امام زمانش میگه یا مزل المؤمنین پس ببینید حواس و جمع شه. هر هرچه ما داریم از اوست هرچه ما داریم از امام زمانمونه آب روی اگه داریم خونواده خوب اولاد خوب پدر و مادر خوب، رفیق خوب، مالی، منالی، هرچی هست از او، او غنی مطلقه. بفهمیم ما فقیر مطلقیم. او عزیز مطلقه. ما زلیل مطلقیم. او اگر دست کسی رو بگیره بلند میشه. کمتر از آنی ول کنه، او که ول میکنه تا بگی منم. تا منم بزنی. همه اینی که ما میشینیم اینجا روزه حضرت زهره سلام الله علیه ها خونیم تو سر و صورته هم میزنیم مال یه منمیه که دومی برگشته گفته گفت علی هست منم هستم سر این یه منم هست گفت من یکی علی یکی همه دعو سرین من هست من میفهمم من موحدم من فلانم بقیه من وجود نداره اگه تقوایی هست اگه اشکی هست اگه توبه‌ای هست اگه گناه نکردنی هست اگه سوابی هست اگه نماز اول وقتی هست همه توفیقی است که او بهمون به داده آیه قرآنم هم معید همین حرفه که هر خوبی هست از داهیه ماست هر بدی دارید مال خودتون هر بیچارگی میکشیم مال خودمونه اینی که فرمودن هرچه به ولایت ما نزدیکتر باشید ما امور زندگیتون رقم بیزنیم هرچی گرفتاره تو زندگی میکشیم به خاطر دوری از ولایته چون فرمودند ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی از عذاب خود من خدا نجات پیدا میکنی وارد ولایت بشی خودم عذابتون میکنم بیایید بیرون از ولایت پس حواس همون جمع باشه امام زمانمون بیاریم تو زندگی با اماممون زندگی بکنیم اگه میخواید سعادتمند بشید اگه میخواید عاقبت به خیر بشید اگه میخواید مشمول روایت علی ابن موسر رضا در ایون اخبار رزا امام رزا هزار هزارتای شما در آخر زمان یه نفرتون دیندار نمیمیرید اگه میخوای مشمول این روایت نشید دیندار بمیرید از این حرفهایی هایی که متعصفانه جریان های انحرافی مهدویت تو جامعه وردن که امام زمان که حالا قایبه نیست حالیه کاری بکنیم تا امام بیاد کی میگه امام قایبه امام حکومت نداره امام امامه امام تو شعنشه شعن امام همون شنه همه زرافت های امامت رو داره که اننا امیرالمؤمنین بالا مسجد کوفه امبر مسجد کوفه نشستن امام زمانمون هیه هر لحظه شما رو میبینه بیاریم امام زمان تو زندگی همون حرف بزنیم اگر باور داریم مشکلات اون رو کچیک و بزرگ رو بهش بگیم عالم رو محضر او ببینیم جرعت نکنیم گناه امام زمان اینجا باشه کدوم گناه از جرعت میکنی سر. با الان میری جلو یه عالمی که بهت میگن چشم ارزخی داره هزار تا خودتو جمع میکنی و یا تا ایوب میگی و سلوات میفرستی و دور خودتو فوت میگی آقا نمیینه ما و چه کار کردیم الفا. یا آدمی که الاسند میگن مردم او چه ابن الحسنه. که همه ریز احوالات تو میفهمه یه جمله دارن تاریخی خدا رحمت کنهای بحجت رو میفرمودن اگر کسی بخواد به مراحل توحید برسه اگه کسی میخواد به تعالی برسه همین یه جمله رو قرار بده سر لوح زندگی شید نمیخواد که اگر ذکر کند یاد خدا رو خدا هم نشینه وست. مستاقی که در روایات راجبه خدا به کار میره که عینیت جسمیت پیدا میکنه مثل یدالله الله مثل عين الله مثل عون الله مثل وجه الله، اینا اهل بیتن یعنی چی یعنی خدا رو یاد میکنی امام زمان یاد میکنی امام زمان همنشین توه اینا اعتقاد شیعه است اعتقاد دین ماست اگه یاد امام زمان امام زمان همنشین تو میکنه دیگه چه مشکلی داریم از کی باید بترسیم؟ از چی باید بترسیم؟ چون یدالله فوق عیدی همه ما امام زمانمون اینقدر از شعن خودش اووردیم پایین امام زمانمون شده امام زمان قوم اونم یه خیابون صفایی که چهارت مرجع تقلید هستن عالم رو گفتیم عالم رو که داره اسرائیل و آمریکا و فراماسونر اداره میکنه یدالله فوق عیدی همه خدا تو قرآن میگه اگر صاحرهای قوم موسا سهر کردن ما اجازه دادیم نه اینکه صاحرها رو دست خدا بلند شده باشن نه اینکه فراماسون رو دست امام زمان بلند شده زمان یه امام زمان دست بسته آواره تو بیابونه داره تو یه خیمه گریه میکنه یه کشتن بردن خوردن این امام زمان این چه امام زمانی درست کردی از امام زمان ما امام زمان یک جنگ 33 روی حزب یک گروه شبه نظامی با 4 تا پیش پا افتاده با مجهزترین ارتش دنیا جنگ, می جنگ پیروز میشه خود اسرائیلیا میگن وقتی ما میجنگیدیم بارها تکرار کردن می گفت ما توپخانه رو زده بودیم نابود کرده بودیم اصلا ای از حزب الله وجود نداشت اما خنپارهای حزب تو سر ما میخورد. بعد خود حزب الله میگه ما توپ عالم در ید قدرت ولی الله هم عالم هم من شما هم زندگی همین سبونهی که میخوری تحت نظارت اوست تحت الطاف اوست درسی که میخونی چیزی که یاد میگیری موفقیتی کسب میکنی، فقط باید دقدقت امام زمانت باشه نه اینکه که تو در دقدقت نباشه او روزی نمیده روزی عالمو داره میده بحثتر چیز دیگه هست بحثتر اینی که تو هم نمک نشناس نباش حرفی که امام زمانت به شیخ مفید فرمود شیخ مفید ما در همه احوال شیخ بخش سید علوم هم در همه احوال نگران شیعیانیم به شیعان ما میگوی خون حواظشون بمواشه تا جوونی اگه افتادید تو بغل امام زمان بلند میشیم هر چقدر دورتر بیشوند دستگاه ما به زمان گرفتاری همون این بحث این چشن. دو سه خط، دو سه جمله را را بی بی هزتا امول بنی سلام الله علیه ها هیا همی نزدیک ببینید شهرهایی مثل بی بی هزتا امول بنی سلام الله علیه ها حضرت زینب و حضرت رقعی سلام الله ها حضرت قبر بنی هاشم آقا علی اکبر آقا علی از این هایی که وجودشون خارج از وجود 14 معصومه، 14 معصومه که گناه نمی‌کنه. نه، حقیقتشون یه حقیقت دیگر است این وجود‌های کنار ائمه معصوم، ازشون یاد می‌کنیم، سه وجهه دارن. یه وجهه چه تاریخی که اینجا بگم تاریخ بگم، بگم از تو مولای سلام الله علیه اینجا به دنیا اومدن، این اتفاقات افتاد و فلان حرف. یه شخصیتشونه که از او یه شخصیت متمایز میسازه امیران مومنی همسر زیاد داشتن غیر وجود نازین فاطمه زهره سلام الله علیه ها که خب یه حقیقتی جدا از همه حقایقه حجت خدا بر امامانه حجت الله علل حججه اسفت الله کبراست ام عبی هاست رسول الله به او میگه فداد بشن نمیفهمیم یه او یه حقیقت خاصی ببینید حتی انقدری این حقیقت است خدا به پیغمبرش بگه پیغمبر من برو به مردم بگو انوشه رو مثلو کن هی کم مثل شما اما وقتی صحبتت حضرت زهرا سلام الله علیه ها میشه امام صادق میفرماید خلقت مادر ما انسیت الهوراست خلقت بشریشم فرق میکنه جسمیتش فرق میکنه او یه حقیقت دیگه است اما تو بقیه زنهای امیر شخصیت متمایزی داره چرا؟ از همون اولش امیر یه جور دیگه برخورد میکنن وقتی میخوان ایشون رو عنوان همسر انتخاب بکنن به قول ماها لفظ آمیانه شلوغش میکنن سر صدا را میدازن برادرشون عقیل رو صدا میزنن میگن عقیل تو علم انصاب بلدی خب امیر خودش از باب علمه این بلد نیست چرا؟ امیر میخوان به من شما یه پیغام بدن که ایشون متمایزه عقیل یکی رو میخوام این خصوصیات رو داشته باشه تو چرا تو بقیه زنها این کار نکرده. یه ویژگی بی خاصی داره وجه سوم این افراد یه که تاریخ یکی شخصیت رفتاریه وجه سروومشون یه بحث سرگونه این بزرگ عبارانه. این عزیزان مثل زینابه کبراس الله لاحنگی ها مثل قمر بنی هاشم مثل بی بی رو غی سلام الله اینا یه وجهه سرگونه دارن که تو باب های حقیقت توحیدی باید بری سیر بکنی. اینه کاری نداریم. اما تو شخصیت حضرت عمیر المومنین سلام الله علیه میگه عقیل میفرموند عقیل یکی میخوام اینجوری باشه وقتی میریم تو انصاب شناسی وقتی حضرت عقیل برادر پیر امیرالمومنین صحبت میکنه راجبه بیبی بی هست و حضرت فاطمه بنی کلابیه اگه میره سراغ قبیله بنی کلابیه قبیله بنی کلابیه رو می‌خوای بشناسی به عنوان قبیله حضرت ام مل بنی این قبیله ویژگی‌های خاصی داره اولیشم این تو عرب هر اشیری به یه چیزی معروفه ما الان تو عراق که برید اشیراها هر گون به یه چیزی معروفه میان یعنی اینا خانواده هستند مثلا مثلا خوش اخلاقن اینا قد رشیدی دارن اونها خصوصا پولدارن رزق خوبی دارن هر گروه به یه چیزی معروفه. مثلا اون موقعا بنی هاشم به صورتهای زیبا معروف بودم کنه بنی هاشم جوونهای خوشگل داره که حالا جان آدم به قربان قمر بنی هاشم که ماه بنی هاشم بوده بنی کلابی شهرتش به شجاعتش بوده یعنی برادران حضرت بنی و نزدیکان و اجداد حضرت امول سلام الله علیه تو کتاب های تاریخ عرب جاهلیت به عنوان دلاوران عرب ازشون اسم برده شده تو تاریخ عربستان در زمان تاریخ جاهلیت که اینها دلاوران عرب بودن چقدر دل دلیل بودن تو کتابایی که عودن نقل کنراجه قبیله و نیکلابیه میگه در زمان جاهلیت قبایلی که میخواستن با هم بجنگن میرفتن یارکشی میکردن قبایل مختلف جذب جزم با پول و مال و منال گفتن بیاید با ما بیمت تو جنگ شرکت کنیم ما پیروز بشیم تو این کتاب نوشته هر دو طرف دعوا میرفتن سراغ قبیله کلابیه بهشون باج و خراج میدن که طرف هیشگه نگیرید شما تو اینجا چون هر قبیلهی رو این ها سمتش میرفتن اون قبیله پیروز بوده از دلاوران عرب حالا فخری نیست ولی این هم تو تاریخ نقل شده که وقتی بعد فتح مکه مکه رو فتح میکنن رسول الله اینا خب خارج از مکه زندگی میکنن قبیله بنی کلابیه اولین باری که سپاه اسلام میره بعد فتح مکه این سپاهی قدرتمندی بوده از این قبیله شکست میخوره بعد خود امیر المؤمنین میرن و اینها رو شکست میرن و مسلمان میکنن دلاوره شجاعت از خسلت هاشونه فوقلا دانمای باهوشن چون اکثرا شاعر رخ سخنورند تو نسل قمر بنی حاشم هم. یک کتابی رو از تایی طول فاتمینی ها تر که نوشتن نسل قمر بنی هاشم همشون یا از شعرای معروفن یا از حکمهای معروفن حتی در زمان قیب... قیبت سقرای امام زمان اون همون تولد امام زمان خب میخواستن دنبال این بودن که نسل امام حسن عسکریه به قتل برسونن دیگه خونه ای که حضرت نردس خاتون سلام الله علیه مخفی میشن که از دست اموال حاکم نجات پیدا میکنن از نوادگان قمر بنی هاشمه یعنی پناه اهل بیت تا قیامت وجود نازین قمر بنی هاشمه قایی از ویژگی های خاص از امالبنی بنی سلام الله هاست این که امیر استثناعاتی قائل شدن برای آیه این استثناعات چیه؟ بحث مفصلی میخواد که امشب دیگه وقتش نیست فقط بدونیم این وجود نازنین این بزرگوار تو خود اهل بیت یه جایگاه خاصی دارن همین الان تو عربا میرید تو عراق میرید میگن حلال مشکلات ما بیبی بی امول البن نسام الله علیه است. عربا که بری تو تاکسی‌هاشون بشینی صلواتی می‌خوان آخر سلواتشون چی میگن؟ جهت تسهیل امور و آسانی امور سلوات و بیبی میفرستن یعنی بی بیبی رو حلال مشکلاتشون میدونن بعد وجهی که بیبی بی در زمان بعد کربلا و کاری که در اونجا کردن عجیبه حالا دیگه وقت نیست اونا رو بگم دوتا اشاره میکنم که بفهمیم چه جایگاهی داره بیبی از تو نزد اهل بیت. بعد واقعی کربلا حضرت زینب سلام الله علیه جسر روزه میگرفتند. یه روز اعلام میکنن جلسه روزه مخصوص داغدیده های کربلا خب جمع میشن که هنیز حضرت میاد میگه خانومی رشیده پشت در ایستاده میخواد وارد بشه بیبی میگن کیه یه مادر اباست او از دومولمنین بیبی زینب بلند میشن میفرماین او صاحب مصیبت کبراست او صاحب مصیبت او صاحب مصیبت کبراست او صاحب فاجعه عظماست چی بوده مصیبت قمر بنی هاش من نمیدونم. احترام نقلی در کلا... کتاب مولود عباس و در کتاب وطلالالغمی اللام قریشی از بس گریه میکنه کنه بیست بیوست عمول بنین نابینا میشن تو آخر عمرشون از بس با سید و شهدها گریه میکنه. کنه بشیر وارد مدینه می شه قصه کربلا تموم شده کاروان داره بر می گرد. خدمت امام سجاد میگن که آقا کاروان میخواد وارد بشه. یه یعنی بشیر برو خبر ورود ما رو بده. وارد میشه به بیبی بی حضرت اومد ونین میگن پیش قراول کاروان امام حسین وارد شد. حضرت لباس های بچه های از تولفز رو تنشون میکنن. میرن میدون شهر همون جایی که بشیر داره خبر از کربلا میده. یو همه کنار میرن یه خانوم جلیله با دو تا آقازاده داره میاد جلو بشیر میگه کیه میگن او مادر عباس ام ملبنین بشیر خودشو جمع میکنه سلام علیکم میکنه بیبه ملبنین میگن بشیر از حسین چه خبر او ملبنین جعفر رو شهید کردن بشیر از حسین چه خبر اون تو شهید کردن بشیر میگم از حسین چه خبر بشیر خودش رو جمعا جور رو کنه تا میاد بگه بیبی امولبنی میفرماید تو این آسمان هزار تا مثل بچه های من فدای تار موی حسین میگه امولبنی حسین رو شهید کردن میبینه بیبی امولبنی سرشون انداختن پایین شروع کردن گریه کردن رفتن بشیر میگه بنی از عباست نمیپرسی گفت او اون روزی که عباسا به حسین فرستادم گفتم شیرم و حلالت نمیکنم بدون حسین برگردی <تصفيق> اگر <متلا> میبین بنی هیچ فخری نداشته باشه که خیلی فخر داره همین یه فخر بس که مادر عباسه جان عالم به قربان شب آخر هیئتتون دیگه ها <تصفيق> خود رحمت ک تول از زمان قدیم گفت ما نجف هم بودیم روزه فاطمیه میگرفتن ما تو نجف اونجا هم شب آخر با روزه قمری بنی هاشم تموم میکردن چرا نمیدونیم این ارتباطو نمیفهمیم که چرا امام باغر میهر یوم القیامت صحرای محشر وقتی رسول الله میخوان شفاعت کنم یعنی علی جان به فاطمه بگو چی واسه شفاعت امتو بیبی بی حضرت زهرا سلام الله علیه دو دست قلم شده قمر بنیهاشمو در میارن میارن این سند مظلومیته جان عالم به قربانت قمر هاشم شب بیست و ما رمزونه عرب رسم داره که وقتی پدر یه خانواده داره شهید میشه پدر یه خانواده داره میمیره دختراشو به یه کسی میشبه. به اموی به کسی میسپاره بعد از اون جریان معروفی که میدونید امام حسین رو قمر بنی رو به احوالات کربلا آگاه کردن امیر المومنین رو به قمر بنی حاشم میفرماید عباسم. این شب با دخترم صحبت کردم گفتم زینب جان من دارم میرم تو رو به کی بسپارم هم <تصفح> دخترم گفت اگه میشه من به برادرم عباس بر. برای همین الان میری تو حرم قمر بنی هاشم بگی السلام علیکه یا کفیل از زینب او ابو رأس الهار او صاحب غیرت. او اول غیره است <تصفح> ببین حالا یکی مثل قمر بنی بنیهاشه مقام سقایی داشته باشه غیرت الله باشه وارد یه قیمه بشه که ارباب مقاتل نوشتن این بچه ها دامنای عربی رو بالا زدن <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> یه همچین منظرهی ببینه چه حالی بهش دست میده دیگه تا نمیاره میره محضر سیدالشهدا و شهدا. و مولای سینم سنگینه میکنه ازن میدانم بده تو این ها تو این عشقبازی بین سید و قمر و قمر بنی هاشم یه ها بی بی سکین سلام الله علیه ها میارن امو جان اگه میرید میدان آب بیارید قمر بنی هاشم ازم میگیره از امام حسین اجازه هست آب بیارم ایشون میگن بفرمایید ولولهی تو خیمه اما عبدالله میشه عمومون رفته آب بیاره به بیبی روما خبر میدن بیبی عباس رفته آب بیاره <تصفيق> اموم عباس ببین بیبی سکینه سلام الله علیه خیمه به خیمه زبونه حال دیگه فرق میکنه اموم عباس رفتها میاره خادم حرم عزت اول فض میگفت میگفت یه روز دیدم دسته های تو عالم رویادی دیدم دسته های عزاداری که میان قمر بنی هاشم استقبال میکنه تا این ذکر رو میگن عباس سرش رو میندازه پایین هنوخه جالت میکشه یا عباس چبل ما لکی بیت سلام